بسم الله الرحمن الرحيم والله حولنا وقوته الا بالله الذي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد اللهم صل على محمد فاطمه الطاهرين الهداه المهديين سیما بقیت الله فِي السَّمَاوَاتِ و نارزین بِاللَّهِ بالله من الشیطان الرجيم علاوه انکم قد نفذتم عیدیکم من حبل طاعه و سلمتم حسم الله المزروب علیکم به فإن الله سبحانه قد امتحن على جماعت منّ على جماعات مبهو اهل امه تفيد باسم خداوند خدمت عزیزان برادران و خواهران بزرگوار در این ایام متعلق به سیدت و نساء ال صدیقه طاهره سلام الله علیها در محضر سخنان بینظیر و بیمانند کف کریمش امیر ملک ولایت مولانا و مختدانا امیر المؤمنین نشسته و استفاده می و بهره می بریم از زلال سخنان حضرت در خطبه سد و نود و دوی خطبه قاسع اسمتی رو میخوانیم خانیم که امیر المؤمنین مدل اجتماعی را بر اساس سلطهای الهی ترسیم فرمود انسان که دورانهای تلخی را میگذرانند، سختیهایی را متحمل می شند. اما دوران سختی سر میآید و در پسش شام تیره صبح امید روشن به لطف الهی طلوع میکنند دولت اقبال میآید تلخی ها سختی ها به پایان میرسد. زجر نامها پایان می رسد در این فرصت و در این شرایطی که خداوند دنایت می میکند گروهی حسن استفاده میکنند بهره کافی میبرند اما معالاسف جماعتی از این فرجه و فرصتی که خداوند به دیشان می دهد و از این اقبال نعمتها و دولتهای الهی استفاده به جا نمی کنند استفاده می کنند نتیجان می شود که سلمت خداوند جاری مجدد امور باز می گردن یه ساختار عجیبی رو امیر المؤمنین بازگو فرمودند به اشاره فرمود از رد آن من میگویم اگر در مورد ولد اسماعیل فرزندان اسماعیل فرزندان اسحاقی یا اقوام و مختلف میگویم هیچ تفاوتی نمی کند این ها که اشتباه احبان دارد یعنی حالات شبیه اعتدان دارد تناس و موازنه برای همگان دارد یعنی در تمام شرایط و زمان چنین ساختاری در حال شکل گرفتن هست لذا فعتبرو رو عبرت بگیرید. این کلمه فعتبرو به رو بارها خدمت دوستان گفتیم همینجا جا بارکتون کلمه فعل از همان ماده عبور میاد عبور یعنی از جایی میگید گذرگاه مقابل این خانه خدا الان گذرگاه عابر پیاده است. آبر یعنی کسی که از نقطه علف به نقطه بمیرود اعتبار یعنی یعنی شما نکاتی رو در اینجا میبینید بر میدارید میاد تو زندگی خودتون پیاده میکنید این میشه اعتبار فتح تا اینجا امیر المؤمنین نسبت به جامعه عرب قسم اول و دوم رو فرمود یعنی دوران تلخ و سختی هایی که خاندیم آرات مشنومه عجمه ها و حمله جهله های فرود آمده سختی و تلخی های اقتصادی ایش نکت زندگی به مشقت و دشوار، تمام اینها رو خوندیم به دنبال اون دیروز در قابط گذشته کاربون کشید کیف نشرت نعمت و علیهم جناه کرامتها نعمت سایه رحمتش رو بر سر اینها افکند و اصالت لهم جناه و لنعیمه ها جاری نعمت های الهی منهر های نعیم فراوان شد خداوند چگونه فص فه فی نعمت ها غرقین تا جایی رسید که فرمود یملکون الامور الا من کان یملکها علیهم حاکم شدند موقعیت پیدا کردند کار به گونه ای شد که آنها که بر اینها حاکم بودند ایشان بر آنها حاکم شدند خیلی امیرالمومنین در سطح بانا سخن را مطرح فرمود حالا آماده ایم که نقطه مقابل رو ببینیم یعنی این ساختار اجتماعی رسیده است به اوج معال عسف معال عسف به دلیلی که امام می‌فرماید حالا سیر نزولی تعیین شوبد الان نکم غد نفنز تو مایدیکوم من حبل الطاعه اما متاسفانه بدانید الا در لغت عرب حرف تنبیه یعنی وقتی میخوانی کسی رو متنبه کنن به خود بیارن میگن الا الا آگاه باشید همانا به درستین که شما به یقین شما قد نفذتم عیدیکم من حبل تا با همون جمله اول امام دلائل سقوط رو و برون رفت نعمت ها رو مطرح میکنه کلمه نفذ و نفظ ال اد راهو به شده یعنی چیزی رو به شدت دراها کردن و ترک کردن دستتون خاکی می شود بعد اینطور طور می کنید دستتون رو از خاک اینو میگن گن نفذ. وقتی خاک دست رو تکان میدید. یعنی کاملا دیگه چیزی رو از خودتون از دستتون خارج میکنید. در مورد امیر المؤمنی فلا ما نفذ یدهو من تراب القمر وقتی که علی دستش رو از خاک مزار سیدتون ساخل آلمی نفس کرد هاجبه الهوز دیگه نتونست بلند شده به معنای دست رو از چیزی خالی کردن فرمود شما نحفظ کردید دست خودتون رو منحبل تاعت از رشته و رئیسمان تاعت الهی همون رشته ای که وقتصمون به حبل باید اعتصام به اون می کردید باید به تمام وجود دستتون رو به اون حبل طاعت می گرفتید دستتون رو از اون گشودید باز کردید نراها کردید حبل طاعت اعلام این را حالا تعبیر امام حبل طاعته یعنی طاعت خداون رشده ایش که یک سر رو اون دست ماست سر دیگر رو تا ملک جانان طاعت شرحمن طارزوان من الله اکبر تا رزمان الهی می بالا آدمی را که مشتری من خدا و, و مرا می کشد بالا که اللهش درو. فرمود شما متاسفانه وقتی که اقبال شد شرایط آمد اما دستتون را از طاعت خدا بیرون کشیدید یعنی دست از طاعت شستی و طاعت خدا را به کناری گذاردید باد نفاذش هم عیدیا کم من هبل تان و ثالثم حسن الله المزروب علیکم و فهم کردید اون حسن و حصار که خداوند پیرامون شما قرار داده بود که بر شما حکم شده بود و شما رو محفوظ می‌داشت. همون حسنی که کلمت لا الله الا الله حسنی همون حسن توحید همون حسن هقایر الهی که وقتی اندرون اون بودید محفوظ بودید از هر چیزی اما شما چه کردید این حسن رو سلم کردید سه نقطه لام نیم سلم ثلمه به معنای رخنه به معنای سنق به معنای سوراخ کردن آسیب زدن این حدیث رو شنیدین قایی در مرگ بزرگان فقه ها و علماء بزرگ ما موت مؤمنل ال... از این عجیب حادیث کافیه که مرحوم کلینی می به نقل های متفاوت از وجود و مبارک امام صادق هست و از پیشوایان دیگر هم داریم ازا موت المؤمن الفقیه فلم فل اسلام سلمتون لای صدهاشه اینگامی که یه مؤمن فقیهی میمیرد رخنهی در اسلام وارد میشه که با چیزی پر نمیشند اون رخنه یعنی ارزش یک مؤمن عالم یه مؤمن به معنای واقعی یه عالم ربانی که عابد و زاهد و صوفی همه تفلان رهند مرد اگر هست به جز آدم ربانی نیست سلمه وارد میشه که جبرانش مشکله پس سلمه فعلم به معنای رخنه و آسیب به شما آسیبی زدید به اون حسنی که خداوند گرد شما قرار داده بود با چین سلمه رو وارد کردید؟ با بیل و کلنگ؟ نه احکام به با احکام جاهلیت به بازگشت به احکام جاهلیتتان و رفتارهای جاهلیت فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُمْ پس ببینید خوب دقت میفرموید امام فرمودن دو چیز رو شما از دست دادید که دیگه آهنگ زبال شروع شد و به گوش آمد زمزمه های شوم سقوط شنیده میشود یک ترک تاعت خدا ترک تاعت خدا دوم جاری کردن احکام جاهلیت باز بین خودتون الان توضیح میدم این رو بحث مهم میستید فان الله سبحانه قد انتن علی جماعتها و اهل خداوند بر جماعت این امت و شما امام مخاطبانش مسلمانان اون روزند صدر اسلامند و تفاوتی نمی کند گفتیم این یه ساختار و مدل اجتماعی است که داره حضرت بازگو میکنه در هر کجای زمان ممکن است چنین شرایطی پیش آید که پیش آمده است برای مسلمانان در های مختلف تاریخ خداوند قدم امتنه علا جماعت هازه الامه امتنه از ماده امتنان امتنان وقتی به کسی لطف میکنن که کمان تشکر می بعد می که بنده امتنان و تشکر خودم را از شما اعلام میکنم قدم تن امتنه علا هازه خداوند من نهاد بر این امت فی ما اقدا بینهم من حبل هازه الالفه در این که عقد و گره زد بین ایشان ریسمان مددت و محبت و آرامش را یعنی کارتون جوری بود که شما به خون همتش نبودی فاسبحتم شما اعدا بکنتم اعدا فاسبحتم به اخوانا به نعمت و برکت. توحید به برکت انایات الهی جوری شد که این دلها اون چنان به هم نزدیک شد که به تعبیر ما فدایی هم شدید حاضر شدید به خاطر هم از سرمایهاتون بگذارید حاضر شدید همه چیز رو به پای هم بریزید اینقدر دلهاتون به هم الفت پیدا کرد اتحاد و اعتلاف آمد فهمت خداوند بر شما منت نهاد بر این امت در اون چه که عقد کرد پیوند زد گره زد بین ایشان از حبل و رشته یا الفت محبت نزدیک شدن دلها التی تقلون تحققون الله، ذللا یاتقلبو نفیز الله اون الفتی که امتی در سایه این الفت پیوند و اتحاد زیستید شد یه سایه امنیت و آرامش بر سر تون. و یعون اینا کنفه ها و آرامش یافتید آوا یافتید پناه یافتید در کنف و در زل و در حمایت این الفت و تعلیف و اتحادی که خداوند برای شما ایجاد کرد حالا ببینید چه نیگت امیر المومنی به نعمت این نعمتی بود کلا یعرف احد من المخلوقین لها قيمه همون اصطلاحی که ما گاهی به کار میبریم میگی آقا برای این نمیشه قیمت تعیین کرد نعمت کلا یعرف احد هیچ کس از بندگان خدا نمیتواند گذاری برای این نعمت بکنه هیچ سری نعمت های خدا بشون کدام نعمت نعمت نزدیک شدن دلها الفت یکی شدن فکرها و دلها در یه مسیر واحد به کنار رفتن کینه ها بغضه ها عداوت ها نتیجه اون ایجاد امنیت و آرامش به طور کلی عزیزا میشه گفت امنیت به معنای واقعی اون امنیت آرامش مقدمه هر رشد و تعالی اجتماعی است در حقیقت حایی پنجاه چهل سوره مبارکهای نور که از مهمترین آیات قرآن در مبحث مهدوییت است. وعد الله الذين آمنوه و الصالحات لا في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يبدلنهم من بعد خوفه امنه بعد يعبدونني لا يشركون بي شيء میگذرت وزگار میرسد تا آن که خداوند حاکم می کند در زمین بندگان ساله و ی خودش رو امنیت حاکم میشود در این فضای امن است که یعبدون میلای و بی شیعا یعنی امنیت رو پیش نیاز زدودن کامل شرک میداند خداوند صبحان توجه دارید؟ من گوی مثال میزنم به این بچه ها تو کلاس میگم این میز اگر این بلرزه و استراب داشته باشه یکی من نمیتونم روش بگذرم. وقتی آرامش پیدا میکنه تو این فضای آرامش از که میشه همه کار کرد امیر المومنین فرمود دلها از استراب به در آمد از بغزها و چینها خارج شد ای فهمید من سری نتیم این ریزه کاری های اخلاقی رو نگم و خدمت دوستان ببینید داخل پرانتز از میکنم وقتی این دل انسان نسبت به یه نفر اصلا بگید نزدیکتون بگید همکارتون کینه دارد و بغز دارد و مستره به نسبت به اون یعنی شما یه میبینیدش امروز تا فردا که میخوایدین همکارتون رو ببینید دلتون آن با آن پر استرام و پر شهنا و پر زنن همون کلمات کمی رو به کار برد نسبت شما یه بخش بسیار زیادی از 24 ساعتتون انرژی شما و تمام شما صرف میشه تو این چالش درونی که با خودتون داری تو این بغز و کینه دیگه تمام نوع آوری ذهنی نبوغ ذهنی شما گرفته میشه حال خوش معنوی و آرفانتون گرفته میشه رونق دلتون گرفته میشه حال مناجات و انستون از دست میرود عجیب آفت بزرگیه امام فرمود این نعمت الفت آرامش و به هم پیوستگی دلها رو خداوند داد که به دنبال اون چنین امنیتی چنین کنف امنی رو پیدا کردید نعمتی که هیچ قدری برای اون دانسته نمی شود لعنه ها ارجه همین کل فمنه چون این نعمت از هر باهایی بالاتره قایم میگن اونهای چیزی نمیشه قیمت گذاری کرده اصلا. با چی بسنجیم وجبیست، متریست، کیلویست، لیتریست اگه میشه قیمت برای هدایت میشه قیمت کرد. لذا انبیاء خیلی زرنگن میگن آقا ما موز نمیخوایی رو ادایت رو ادایت کریمون چون کسی نمیدونه که بهشم چیزی بده چی بدن؟ بگه ما دنیا رو بهتون میدیم دنیا کجا نعمت ادایت کجا لانه ها ارجه هومن کل ثمنن و اجل من کل خطرن اجل جلیلتر و فراتر با عظمتتر از هر چیز مهمی خطر یعنی چیز مهم خیلی فراتر از هر عمر این عمر بزرگ. اما و مو بدانید انکم سرتم بعد الهجره اعراب اما شما بعد از هجرت اعراب شدید از بزرگترین گناهان کبیره در اسلام اتعرب بعد الهجره اتعرب بعد الهجرت. اینی که امام درن میفرمان. و علما عناکم بعد الهجرت عربا شما بعد از این که هجرت کردید. هجرت یعنی چی؟ یعنی از اینجا به اونجا رفتید، از مکه به مدینه رفتید، از این شهر به اون شهر رفتید. این صورت فیزیکی هجرت. ما دو تا هجرت داریم. یه هجرت مکانی است. بله. از مهمترین پدیده ها که در مکتب انبیا بوده است. از ابراهیم آغاز می شود که این نیمه ها جرون هجرت کرد از اور، بسره، ماوالان بسره از این منطقه جنوب شمال بابل، از اطراف بابل هجرت کرد تا سرزمین اریها، از زه، الخلیل، فلسطین هجرت خودش را آغاز کرد این بزرگ مرد الهی این هجرت فیزیکی است اما کسانی که هجرت فیزیکی می قبلا یه هجرت دیگه می کنن که بعد نوبت این هجرت میشه و اون هجرت درونی است اون هجرت دل بعد نوبت هجرت گل می رسد هجرت از اسیام به طاعت هجرت یعنی ترک به فاصله گرفتن ترک کردن و فاصله گرفتن معصیت به طاعت غیر خداوند به خدا من المهاجر من هجر عن و المجاهد من جاهد نفسه امیرالمومنین فرمود مهاجر واقعی اون کسی است که از سیاد و خلاف رضای الهی هجرت کند و مجاهد واقعی آن کسی است که با نفسش مجاهده کند بعد نوبت جهاد بیرونی میرسه اگه خسم درون باقی باشد با خسم بیرون چه می جنگی دشمن خانگی مگر تو را امان میدهد که با دشمن بیرونی میجنگی. فرمود شما سرتون بعد هجره بعد از اینکه هجرت کردید شما جدا شدید از اون رفتارهای زشت و اسیان ها و تمرد ها و شرک ها و مسائل اونچنانی اما مجدد عرب شدید خوب دقت کنید اینجا اشتباهی نشه ما یه عرب داریم جمعش اورب، یعنی نجات عرب جمعش عرب یه اعراب داریم و اعرابی این ربطی به نژاد عرب نداره یعنی سکان البوادی یعنی بادی نشین یا به تعبیر دیگر یعنی کسانی که فرهنگ نیستن الاعراب اشد و کفرن و نفع گایی توی دوستان می دیدیم اون سالهایی که توفیقی بود که هایی مشرف می شدیم این وقتی دل این دوستان پر میشه از بعض از رفتارها و مثلا چیزها تو مکه مدینه می گفتن علا و دو گفتن و نفاقه به اینها به جماع اونم می خندیدن اونشون که آگاه خودن میخندیدن به این حرف و این کار برده غلط علا عرب ربطی به نژاد عرب نداره ممکنه عجم باشه فارس باشه روم باشه خودش که نماد بی است. فرمودن که یا علم بیاموزید یا موزید یا تکن عرابی یا. یا عرابی میشید یعنی بی فرهنگ میشید پس کلمه عراب و عرابی آلت العراب آمن نا این که دوران داریم یعنی اونایی که دور از فرهنگ بودن چنین و چنان میگفتن امام فرمودن شما بعد از این که هجرت کردید از جهل و جاهلیت اومدید به دامن اسلام به آگاهی از اسلام به تاعت از ظلمت به نور اما مجدد چیکار کردید؟ عقب گرد کردید ارتداد کردید بازگشتید باز به حالت قبلی خودتون باز به احکام جاهلیت برگشتید باز به همون کینه هایی که به خاطر یک کینه صد نفر رو میکشتید باز برگشتید به خاطر همون حالات قبلی جاهلیت سرتون بعد هجرت اعرابا و بعد الموالات احزاما بعد از اینکه این موالات این پیوستگی این مددت و محر بین شما حاکم شد باز شعب شعبه و حزم حزم گروه گروه شدید و هر کسی ساز خود رو زد و به سخوی خود رفت و مرز دور خودش و خطوطی کشید و خودش رو از دیگران جدا کرد ماتتقن لعون من الاسلام الله حکم اینجا خیلی انگیزه عزیزان اینجا و خیلی تکندهنده است ما تتعلقون من الاسلام الا بسمه کارتون به جای رسید که یه الان وابسته به اسلام نیستید مگر به اسم اسلام نه به رسم اسلام نه به ماهیت اسلام نام اسلام فقط یدک میکشید، نه ماهیت مسلمانی را نه اخلاق اسلامی نه آداب اسلامی نه اسلامی نه قابط اسلامی نه. ما تتعلقون من الاسلام الا بسمه بارها گفتیم عزیزا صد بار بگید آب آب آب اتش شما رف. نمی شود. اما آب رو بیارید یه جرعه بنوشید اتش شما رف میشه. صد بار بگید گل گل گل هیچ بویی در اینجا نمی آید اما یک دست گل دماغ پرور بیارید فضا رو معطر می کنه. اسم کسی رو نجات نمیدهد. ماهیت که منجیست فرمود شما الان تعلق پیدا کردید فقط تنها ربط و ارتباط شما با اسلام اسم شماست که اسمتون مسلمان است. تعرفون من ایمان الا رسم و از ایمان چیزی نمیدانید مگر یه خط و نشانی مگر یه علائم و نشانه هایی اندک نه اینکه حقیقت ایمان در شما دیده شوند نه اینکه حقیقت مسلمانی در شما دیده شود اسلام و مسلمان را به چه چیز میتوان شناخت چیز از رفتار اوست اخلاق دوست عقات و باورهای اوست که باید منطبق بر کتاب خدا و سنت به اطلاع بیان بر باشد فرمود ما تا خوونه بهند اسلام نام ب اسمه تعرفون من ال ایمان ال رس رسم آن این مسلمان دیگر است. مقصد و مقصود قرآ دیگر است. چنین چیزی رو مییر دارن میگن. تا قولونا نجد عن نار ولل آره این از شعارهای اصلی جاهلیت بود میگفتند الاار ولن ال نار ولن آر انار ولن اور اصل کلمه اینه یعنی اد خل النار به اصطلاح دوستان ک ادبیات میدونید این منسوب به فعل محظوفه. یعنی اد خلوناره خلونا را آره اد خلوناره را منتزم آره یعنی میگفتن حاضریم جهنم بریم اما حرفمون به کرسی بنشینم همون که تو فارسی چی میگیم این رو میگیم سرم بشکن نرخم نشکن همین زبان اصل خودمون این ترجمه شده نار عرب جاهلی میگفت من پدرمو کشته باد 20 نفر از این قبیله بکشم ولو به جهنم برم اما آره بر من که در قبال پدرم 20 نفر نکشته باشم خدا نمی پسندد که نپسندد به جهنم میرم اما قبیله من باید این امتیاز رو داشته باشن. نژاد من بودین ملت من بودین امتیاز رو داشته باشن میخواه رضای هر کسی باشد و نباشد میخواهد جهنم باشد یا بهشت باشد برای من فرقی نمی‌کند این اوج عصبیت جاهلیت بود این همان است که الله اکبر فرزند فاطمه وجود نازنین مولانا و مختلانا حسین ابن علی هنگامی که تنها یک تن شد النظر و نظر ایل ها یمینهی فلم یره هد و نظر ایل ها فلم یره هیچ کس رو نمیبینه و تنها داره با این حداقل چهارت بونزه هزار حمله میکند اینا تا مرزای کوفه میرن تا کرانه های فرات میرن یک تنه اونجا بود که رجز میخواند الموت اوله ها من رکوب الاری النار اولام من دخول الناری ال... الار اولام دخول ناری نه حسین ابن علی چیز دیگه میگه الموت اولام رکوب لاری بله من حاضرم جان بدهم اما زلت رو نپذیرم اما اگر بحث دوزخ و طاعت هست من حاضرم چیزهایی رو در دنیا بپذیرم که مستوجب به نار و عقوبت خدا و من نشمم یعنی مصیبت رو میپذیرم اما معصیت رو نمی پذیرن اینا عکسش می گفتن ترجع دارید شما الان دارید میگید گید اولا ولل آر باشه به جهنم بریم اما آر را با قیلت ما با عصبیت ما نمی سازه. برگشتید شما به جاهلیت هنجار و رفتار های جاهلی تو اقتصاد جاهلی چی بوده همون توتون حاکمه اقاید جاهلی چی بوده همون که. کو آموزهای های اسلامی در شما کون اخلاقی که اِنَّكَ خلقن خُلَقٍ آزیم که پیشبای صادق وجود نازلین نبی مکرم خاتم انبیا محمد مصطفی نحال اون رو در باغستان وجود شما قرض کرد و کشت والات هر من ال ایمان الله رسمه تقویل ننار و بال آور که آن میده سخن باز ره. اصلا نیست اینکه قصه چیز دیگه‌یه که آن نکم توریدونه انتو کف علی اسلام علاوه‌جیه. کوی هستن شما میخواید اسلام را تکف علاوه‌جیه. اکف تکف او به منظور باجگون کردن کامل. گویا میخواید اصلا شما اسلام را باجگون کنید اصلا گویا اصلا تیشه را برداشتید به ریشه دین خدا دارید میزنید با این عملتونی کجاش مسلمانیست فرمود کنکم توریدون انتوک فعول اسلام علا وجهه علاوه وچه انتها انتها کن لحریم انتهاکن لحریم چطور؟ از جهت که دارید حتی می‌کنید حریم اسلام را حریم حرمت، معنا، ها و نحدودیت ها یعنی پا رو گذاشتید اون طرف خدوط قرمز و یه جمله رو بگم بعد ادامه مطلبم امام فقط این جمله کوتاه ببینید این واقعا همین عزیزان حالا امام دارن اون روز میگن شما در هر روزی ببینید در خودمون ببینید حقیقتا شکوه مندی اسلام از رفتار و عمل مسلمانان شناخته می رفتار مسلمانان اسلام مشک این است که خود ببوید. نه این که اتار بگوید نه اینکه عطار بگوید عمل. من این رو گاهی خدمت عزیزانی وقتایی در بحثهای اخلاقی تر که بوده از کردم هیچ اگاهی ندارم که تکرار کنم سیزده سال افتخار زانو زدن حلقه به گوش بودن در محضر استاد بزرگم حضرت علامه سیدی دست عصبه کامل اخلاق بزرگان آفاق را گردیدم بسیار خوبان دیدم اما تو چیز دیگری اما میخوام ارز کنم اون چه در این سیزده سال از این استادی که فقه و اصول و ارفان و اخلاق و, و علوم مختلف دیگه ای رو در محظر ایشان آموختم چیزی که من از ایشان در تمام وجود تکان میداد گفتار اخلاقی ایشان نبود رفتار اخلاقی این مرد بود یعنی من اخلاق را می دیدم اخلاق را درس نمی گرفتم به درس زبانی و شفاهی در طی ۶ سال یه مرتبه به من تو ابرووی ایشان گره دیدم فقط سی سال که میگم نه اینکه برم صبح درس شب برگردم مثلا یه ساعت بعد برگردم یه کرسی درس باشه نه مللاظ وابستگی و پیوستگی بود پیوستگی یه کامل محزرم بانکشون بود شب و روز بود حالات خاصی بود. اما این خود این یک نفس با صاحب اخلاق عملی نشستن تمام زندگی رو تحت و میده قرار میده این مسلمان این خلق ایمی اسلامه باید دیده بشه در عمل باید پیاده بشه ادبیات کلامی من و شما باید ما را از غیر مسلمان متمایز کند حرف زدن حرف کوچه بازارمون. ادارمون دانشگاه اون حوزهمون مدرسه اون ن از چدمون؟ بیاد کسی گوش کنه بعد بگه بله اینها این این طور با هم حرف میزنن این کلمات رو به کار می یه چرخی بزنه تو بازار اصفهان بیاد بیرون بگه به خدا قسم اینها مسلمانن این رو اسلام میخواد عمل منو شما بیاد تو خونه شما یه ساعت میهمانتون باشه رفتار عزرتالی رو به خانوم خانوم رو با شما ببینه. واقعا اینا مسلمانه؟ ای چه رفتاری اینها با هم درن رفت رفت رفت کجا من به صورت تو نگاه میکنم تمام غم های از دلم میره این رفتار زن شوهر مسلمانه چه کردن با هم که این گناه قمز و دغا ای نه اینکه یه ساعت نیم ساعتشون اگر یک ساعت شد کنار هم نشستن در انتظار جنگ سبوم جهانی باشید تحمل یه ساعت هم رو ندارن زیر یک سقف. خیلی کجاش میشه مسلمانی؟ کجا میشه آموزه های اسلام و تربیتی؟ اسلامی ما فرمود انتهاکند حریمه شما پاتون و از حریم اسلام گویا حریم اسلام رو دریدید خطوط قرمز رو زیر باگذار و نقزن لمی الذي وضع وزع الله وزعه الله لكم حرما في عرضه و مماسیق و تأهداتی که با خدا داشتید تون الفت فافاستگی تون اتحاد و پیوستگی تون پاسداشت حریم الهی اینها رو ناداز کردید نادان به لذی الی که میثاقی که خداوند وضع کرد برای شما به عنوان حرم به عنوان یک دارای حرمت در سرزمین خودش و امنا بین خلقه و امانی قرار داد بین خلقش خب ظاهر سخن امام و من دخل حوکان آمنا به حدود و حریم کعبه و مکه هم میخورد و به تمام حریم های الهی میخورد تمام مدده های الهی را که زیر پا گزاردید و نتیجه اینه که امن رو بر خودتون تموم میکنید امنیت و امر استراب ها تشبیش ها نگرانی ها حاکم میشوند این نکم و این نکم و بدونید لجه العلات غیره ای هارب اهل الكفر من چی میگم خدمت میگم صول سیاست خارج داخله اصلا همه چی تو این کلمات وجود و که رو بیرون میاد چیکار کرده چطور این مطالب برای هم به هم تافت است و باافته است و چیده است این جاب تو بارات حالا این شالله رسیم؟ بشید روز پایانی بعد میبینید خب باید هم همین باشه یعنی وقتی میرسیم که میگوید بله ارتباط من با پیامبر مانند بچه شطوری بود که در پس مادر او مادر خیش حرکت میکنه و لحظه ای نبود که خدا من پیانبر یه معرفتی رو بر جان و وجود من وارد نکند و وجود من رو سیراب نکند. میرسیم به جه که بعد مشخص میشه اینها چی میگه یعنی در جای دیگری در محجر بلاغم من بیرون که قسمت هایی که انشاءالله روزهای آینده میرسیم نداره هیچ جا نداره اینه بارات و این نکم این لجعتم الاغیره اگر شما لجعه، التجا نمیگید التجا التجا گفته ای حرمت ملجع درماندگان ملجع الجا یعنی تکیه کردن پناه بردن اگر شما تکیه کردید و پناه بردید الا غیره زمیر غیره ابتداعا به خدا بر میگردد و ممکن است به اسلام برگردد فرقی نمیگنه اسلام و خدا اگر شما تکیه کردید و پناه بردید به غیر خدا و تعالیم خدا و دین خدا اهل احلالکف بدونید احلالکف رو بایتون میجنگن یعنی ازتتون یعنی تبدیل به زلت میشه درگیر میشه شوکتتون شکوهتون فرو میریزن دیگران اجازه میدن که به جنگتون بیان اون سرفرازی و سربلندیتون ازاو اردتم بعزن بلا و اشیره عظمت بلا و سلطان فرمود ازاو اردتم بعزن بلا و اشیره ازت میخواین بدون اشیره و قبیلو پتانگ و, و عظمت بلا و سلطان عظمتی بدون این. قدرت‌های های این چرینی خارج بشید از زل معصیت الهی برید به سوی عز تاعت خدا وان فخرج من ظل معصیت الهه لاعز از عزیزان اگر کسی در زیر سایه تاعت خدا قرار بگیرد خدا با باحت شوکت عظمت و شکوه می میبینید یه مشت دوستخان روی که به تحبیر ما می نویسد علیوم استعمال تنباکو به نحو احوانکان در حکم محاربه با امام زمان است. در دربخانه ناصر دینشاهی هم قلیان ها شکسته میشه و پیر کهنه استعمال تو این موضوع به زانو در میاد. با دو خط. یه پیر فرتوت 85 ساله در کنج سامر را. اگه قواتی خدا میده به طاعت البته حالا که گفتم از میرزای شیراز میده این رو بگم خدمتون اب نداره بعض این بزرگانمون رو ما بهتر بشناسیم. مزیزان عزیزان خصوصا در این نصر زمانی که بازار به اخر دهندریدگی ده ها و مسائل این چنینی از طریق امواج فراوان است و زیاد شنیده میشه اینو از مقام مبسق نقل میکنه. فرمودن که بزرگی از بزرگان علمای ایران اومد وارد شد بر مرحوم میرزا شیرازی صاحب فتاوای تمبکو. خب میرزا خیلی مرجعیتشون عام بود. یعنی در تشریع جنازه ایشان قصه‌های کار یاد دارد. یعنی بین شهر‌های عراق متصل شد. اینو از تو استاد علامه حکیمی نوشتن تو زندگی مرحوم میرزا شیرازی. خیلی زیباستیم بیدارگران عقالیم قبله تو این کتابشون ارز بخیر اتسل نتل این شهرها به هم متصل شد در تشتیه جنازه یه چنین وضعیتی برای این حال بزرگش اسلام یکی از علمای عرام حکمت وارد شد بر میرزا اما چنان خوب این مراو... به اسطلاح مراجماتیشان زیاد بود که نوبت نشد روز اول روز دوم روز سوم نوبت نشد همین دور که تو خانه بیرونی و اندرونی تو بیرونی نیشسته بود منتظر بود و سوم دیگه گفت آبا تو دلش عین اینو من هم استاد می تو دلش گفت بابا تو کانی برای خودتون درست کرد اگه امام زمان بود همین کار با ما میکرد رفت یک مرتبه دیدن میرزا بدون عبا دوان دوان سراسیمه از درون زد بیرون از اندرونی اون پیشکارشون منشیشون به قول ما گفتن بدوید سر کوچه آقای فدانی رو صدا بزنید بیاد رفتید هم این آلمی که اینطور گفت تو دلش رفت سر کوچه دستد اومد گفت آقا فرمودن بیاین داخل. مات موند اومد داخل دید میزا نشستن دقایقی سکوت کردن هیچی نگفتن در فرمایش جنابالی چیست مطلب رو شنیدن مطقفت خشک کردن و اما شما اشتباه کردید ما را با ولی احصر اجلال لا تا فرجه و شریف قیهاز نفرمایید آقا ذره از انوار ولایت خودشون به ما دادند تا در اصل غیبت گره از کارشی شیعانشان باز کنیم باز کنیم ذره ای از انوار ولایتشان در عصر ریوت به ما دادن تا گره از کار شیعانشان باز کنید چه خبر تو دنیا چه خبر تو دل بندگان خدا و اولیاء خدا عزیزان وقتی کسی اومد به طاعت الهی دیگه مرز نداره خدا میداند من نمیخوام نوعاً میبینید وارد این حرف های اونسوی برق نمیشم همیشه این طرف برق رو میگم اما دیگه میخواند دل شما را دیوار نداره کن تو سم احول از یسم به خدا سمیه هست با چی؟ با گوش؟ خدا بسیر است با چشم؟ به جایی میرسد بنده من که من خدا گوش او میشوم که با من میشنود و چشم او میشوم که با من میبیند پس نیاز به این چشم و گوش اسوات و اموانج ندارم مردان خدا پرده پندار دریدم دیگه این پندارهای ما این که ای دست میده این و شکت با تاعت فرمود و ام نکن کن لجاتهم الاله غيره اگر رفتی تکه کردید و پناه بردید به غیر خدا و غیر اسلام و اهل کفر فما لا جبرائيل ولا میکائیل ولا مهاجرین ولا انصار ینصرونکم نمادد های غیبی از سوی خدا میآید و نه نیروهای انسانی میاد اگر رفتید به دامن کفر به جای اسلام پناه بردید ببینید خدابند می که مسلمانان بدانید پیام تو لند هرزا انکل یهود و لند نسار حتی تتبهن ملته یهودیان و مسیحیان هیچ وقت برا تو کف نمی به اعلام رضایت از تو نمی کنن مگر این که دربست تسلیم شد افید امزا تا احودت رو کنی تو گفتگوها و مذاکره ها اگه هرچی گفتن امضا کردی بعد از تو راضی میشن برات کف میزنن تشویقتم میکنن دیگه نه مشکل حقوق بشری داری نه آزادی داری نه هیچی نداری دیگه همه چی تل میشه دیگه اگه تصدیمشون شدی چی میگه امیر المومنی الله حجبه اگه شوکت مسلمانی خودت زیر پا گذاشتی له کردی به خاطر خدا دنیا به ظاهر اینه اما معکوس غذیه لا تترکنو نزنمو فتمسکم اگه تکیه کردید به ظالمان آتش زادمان شما رو در خواهد گرفت نه تکگاه اونها براتون آرامشگاه باشد فهمود نه خدا کمکتون می کند نه میکائین نه جبرائیل. دیگه نمیشه روز بعد روحت که این فرشتگان الهی بیان به تعبیر ما امدادهای قیبی بیاید نه انصارو نه مهاجر یه انصارو نکن الان مقارعتا به سیف مگر کوبیدن شمشیرها در انتظار شماست توفانها حتی یه کم الله بینکن تا که خدا دیگه فردای قیامت بینتون داوری کند به حکومت کند که مطلب چیست و حق کدام است و این این دکمول امثال من بأس الله و قواره و ایامه و وقائه و باز مجدد امیرون ما میفهمند خدا میداند به خدا خصم بین شماست این نمونه ها همین هایی که من گفتم من گفتم چشمتون رو باز کنید این بر برای تاریخ می بینید نمونه ها و شواهدی که این حرکت عرض به خدمتون بفرمایید مثلا این شکل رو هر چی میخواییم بگیم این رو این حرکت رو تقیی کردن اومدن رسیدن بالا فاصله گرفتند از حقایق علایی چی شد با سبوت ها شروع شد با هر ادباری که پیامدهایی آمد که انشان باز ادامه بحث و مطلب رو خدمت دوستان از میگم حیفم میاد که من از این حال خوش شما در حد یه دعا استفاده نکنم. هر وعدگارم و عظمت جلالتت و آبروی عمیر ملک ولایت به این دنهای بیدان بندگانت توفیق مسلمانی کردن آنگون که تو میپسندی و میخواهی به ما مو و ملت ما و مسلمانان عنایت بفرما. متشکران از و علیکم ورحمت الله.